وقتی که من در این جلسه مناسبه اجل بکنم بیش از مطالب دیگر مربوط می شود به مسئولیت سنگینی که امروز جامعه مددان بر عهده دارد بر دوش دارد برادران عزیز این سنت مدحی شیوه مدحی و ستایشگری خاندان پیغمبر که افتخار است این در بین جامعه ما خوشبختانه رواج پیدا کرده است دار شده است بود قبلها محدود بود امروز این صفره گسترده شده است این میدان باز شده است افراد زیادی هزاران نفر امروز در سرتاسر کشور با استفاده از روغ و اونارو و انواع و اقسام شیوه های بیانی در این عرصه مشغول فعالیت هستند. خب این می شود یک فرصت هر فرصتی همراه با یک مسئولیت شما وقتی نتوانید با کسانی مخاطبه بکنید مسئولیتتون در یک حد است. وقتی توانستید مخاطبه کنید مسئولیت طبعا فراتر از حد شخصی به اندازه حوزه توان تخاطب مسئولیت گسترش پیدا می شما که می با مردم حرف بزنید با هنر شعر و صدا و آهنگ می دمانید مردم مخاطبه کنید. این خودش مسئولیت آور است. همه این فرصت ها و امکانات دارای همراه خود یک مسئولیتی هستند. این مسئولیت رو باید خوب بتونید عدا کنید. اگر جامعه مددای کشور اونجنان که شایسته این رتبت و این مقام هست به مشون یه تکه کشور اداره کنه که در سطح کشورات تبع میوفته.